زیارت کربلا رو داره زیارت سامرا رو داره زیارت مرتزا رو داره کسی که امام رزا رو داره زیارت کربلا رو داره زیارت سامرا رو داره زیارت مرتزا رو داره کس که امام رزا رو داره کس که امام رزا رو داره آشغ عاشق،, آشغ خادم آشق، عاشق آشق عاشق خادم آشق عاشق آشق عاشق خادم عاشق عاشق دیدن عاشق دیدنه, دیدنه نجواهای های زیر بارونه زائر عاشق توی این خونه گدایی رواست در این خونه گدا پادشاست زائر سحن رزا زائر حرم اللات من گداتم مبتلاتم من گداتم مبتلاتم کبوتر روی بوم گنبد صلاتم کبوتر روی بوم گنبد صلاتم بگو من گداتم مبتلاتم من گداتم کبوتر روی بوم گنبد صلاتم کبوتر روی بوم گنبد صلاتم بگو من گداتم مبتلاتم من گداتم کبوتر روی بوم من روی بوم bala hame no kala bala hame shi ha bala hame bala تو رو قسم میدم برای زائره کربلا دعا کن تو رو قسم میدم برای زائره کربلا دعا کن با تو شاه خراسون امنیت دار ایرو با تو شاه خراسود همنیت دار ایرود داره این سرزمین زمین بچه های هیاتی با غیرت فلا بود داره این سرزمین زمین بچه های بسیجی با غیرت فلا بود داشی سر به سر ما نزاد داشی سر به سر ما نزاد نام ایرون به زبونت نیاد داعشی سر به سر مال نام ایرون به زبونت نیاد حس مسولای مانی خاک ما داره بسیار داره بسیار داشی سر به سر مال از داشی سر به سر مال نام ایرون به زبونت نیاد داشی سر به سر مال از نام ایرون به زبونت نیاد حس سلیمانی خاك خاک ما داره بسیار داره بسیار من کدات م مبتلا تا میادو تا مبتلا تام که روی بوم گنبد بده تلوتام بوم میگم بده تلوتام مسلطان هیئت بیت الزهره سلام الله علیها btzs.ir